سارک و سارک سارک چکار میکنن مال مخفی مردم رمی برد این جزائش هست که دستش رغت کنیت سارک زن مرد باشد یا زن باشد فَقْتَوَئِ دِيَهُمَا کنید کُنِیتْ اِحُقَام دَسْتَانَ آرَا به ما کسبا جزاد آدمی به بمقابلی کی قسم کردن نکالا من الله این درست عبرت و هست از خدا از خدا حسن رہی گا واللہ اللہ تعالی صاحب قدرت است عزیز غالب هر حکمی صادر کنت ایس کے ساگر چرا ندارت حکیم است او دانا است مناسب جرم خدا مجازات اکنید دست چهار دوز را ببورید امنیت یک میلیون انسان در ظاہدان تامینه یک میلیون انسان آسوده اگر بدون چون چرائن حکام دست دوز دهارا می و بر سر چار را آویزان می کردن دیگر دی نمی شو. ماشین با کلید اینهایی ای که ماشین مردم شب مردم امنیت دارن از مال و جان خود اونهایی که ماشین دارن اونهایی که موتور دارن به هزار کسن و دوزگیر و چیز مچهدشون میکنن میکنن یا نمیکنن مردمی که امروز مال دارن امنیت را نها کاملا سال شده خصوصا که کسی که ازر را بدانن طرفتار ندارن فامیلی ندارن میگه بیت آرعب همون مال برایش آزاره. الله تعالی میگه باید اسعارک و اسعارک توفقت و ادیم. دستی نهار خدکویی. خدا نگفته اسعارک را که بکشید چرا؟ دوستها از مرغ رزمنها از مرغ زیاد حراص ندارند. حراص اینها از بریدل دست و پای. الله تعالی میگه اینها در دنیا خوراهم گفته. بگوییم ما من اونجا فرمود حالا پردازی فر کنن هم خیزیون فی دنیا دست تریک که رسوایینها در دنیا همینه. با یک و با یک دست. یک دوست میگن گفتن این همه مال این همه متا این ریخته میگه من این دست را دوست دارم اگه سر منم میزدن من دریغ نمی کردم اگه یا گیر میاند دیر آمدن میان سرمن من میشه بله دست من دیگه تازنده ام رسوه الله سبحانه و تعالی قانونش بخاطر اینه که گناع نشود دوزده اگر می کشتند دوزده اگر به اسطلاح شکنجه های سخت سختی می دادن دوزد معنی نمی شد لیکن دست بریدن این رسوائی این تازنده باشد رسوائی هست کمی کشن بابا دیگه خبر فلانی را کشتن پس پرداد پس پرداد دو سال دیگه فراموشه لیکن دست بریدن تازنده ها زلیلی هر جا بگرده دستی تونه چرا بریدن؟ چکار کردی دستی از اینجا بروی دشمن؟ زلیل میه تازه اندی غایب نمیشه جنایت این انجام گرفت تحمیل بیمور کتا و با پار رفته با دست جنایت کرده لحظه دستش هم و امام شافعی رحمه الله گفت اگر دو مرتبه رفت دزدی کرد دیگه دست و پا شلاق امام بزرگوار ما میگه نه دیگه همین یک دست و یک پا بس از مرتبه بگیری زنده بکنید و چوب بزنید خاک توبه کن دیگه دو مرتبه تو کار نره خیلی دو زدی کر با هم ای یک دست و یک پا بی حیا شد اخر گردنش بزن بیگ اِنَّمَا جَزَاهُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله بخدا در زندگی ما چند سبایی این قانون خدا بیچون و چرا اجرا شد دست بریدن ولی غذا دیگه مردم که آسایش بودن همون دزدهای معروف که پایشونو میخوب کرده بودن میگه دزدهای را از دزدهای های پایشونو با تخته میخوب کرده بودن دیگه غدم می تو خیابان و پوز می دادم یه حد بی وقتی انسان تا درد میکنه دیگه چی لگه دست تا ببر دیگه نینی چار نفر ده نفر دست مریده شد یک کشور امنیت خمینه الله تعالی می گه نقال من الله والله عزیز حکیم عزیز هر حکم میکنه کسی حق چرا نداره حکیم امید آنت که از دیگر راه دست از دوزینه نمیکشی چرا این همه شهر پر از دوزده کبش مسلمان باور کنید ساعت و پول رو میگذاشتد اونجایی که حکم خدای جرامیشو کسی دست نمیزد حالا کبش مسلمان رو نمیگذارد چهار دوز کفش دوزد را دست و پهشونه دستین ها را میبوریدن دیگه کفش نه که طلاح میواردید می میگذاشتید تا پس برد کسی دست میزد شما هم شنیدین دستان را سر را وقتی پولی میافتد هم دست نمیزدن یکتا الانجا کسی مراقبت میکند ساعت میگذاشتم کیه ساعتا بر میدن نگاه میکردم پله اینه یعنی غد عزت دین اسلام به جان انسان داده به مال مسلمان احترام داده هیچ چیزی اگر بر ناموس کسی تعدی شد اونجا اللہ سبحانه و تعالی رجب را اگر بر مال مسلمان تعدی شد دست شبو برو پا شبو برو بر جان مسلمان تعدی شد گردن دزن قاتل را و لکن فلکساس حیاتن یا اول الالباب سغات خدا احترام و عزت به جان و مال مسلمان داده است. همان من بعد ظلمی کسی توبه کرد توبه صارت بعد از اینکه ظلم کرد و اسراح کرد فانا الله يتوب عليه الله تعالی بر هر ذنبی کنند ان الله غفور رحیم الله تعالی بسیار بخشنده و مهرمان است یعنی به دوستان تلقین توبه می‌دهد توبه کن شابت کنید دست از دزدی بکشید برخورد شما بازات بخشنده هست و شما را میبخشد و مزید می میکند و شما را در جنت میکند حالا اگر کسی اعتراض کند که این قانون سخته چقدر این خبیس های کافرها حقوق بشر حقوق بشر بگه یه قانون دسبوری دوست این زای کردن حقوق بشره قلانت ها او جهنمی های بیاغ مال و جان هزاران انسان در خطر باشد بهتره یا دست یک جانی قط باشد چقدر دوست و جنایت در امریکا و در این کشورهای کفری میشه و در کشوری که حکم خدا اجرا نمیشه نمیشه جنایت کمزینات میں شہزادیاں انصافن با عقل نہ مخارب گی کہ امنیت و آسایش ملینہا انسان در خطر باست ہر شب دہا خانہ و دہا ماشین به سرقت بره اینها بشر نیسن کہ حقوقشون ضائع یک انسان خون جگر خورده، زحمت کشیده، کارگری کرده، سالها زحمت کشیده یک ماشینی ای را سواره، آغا میا دو را پیاده میکنه و ماشین شا برمی داره میره این ظلم نیست، این ظلم نیست، این بشر حقش ضائع بشه که چهار دوز، اگر خود این حبی ایمان دوزدهای درجه یک حسن در دنیا دوز میکنن و دوزی های کلان کلان میکنن به خاطر این قانون خدا را ظلم میگن الله سبحانه و تعالی میگه علم تو عالم ای انسان تو نانی دانی که ان الله له ملک السماوات و الارض به خدا اختصاص دارد باد آسمانها و زمین و این مالک آسمانها و زمین او هر حقوقی بکند اختیار دارد شما قانون درست می‌کنید، به ایمانها قانون شما احترام دارد، قانون سازمان ملل احترام دارد، رتبه سازمان ملل ارزش دارد. اونی که اختیار آسمانها و زمین را خلکان ملکن ملکان، دارد، قانون او احترام ندارد. ها؟ شما مگه نمیدانی؟ ان الله له ملک السماوات و الأرض مالک اخاسمانها و زمین و آن چه در زمین و آسمان هستن مالکت اینها ازان خداست مالک در ملک خودش هر کس می کند دیگر خری مثل بوش حقیقی را ندارد تو چه کار هستی مالک این دست مالک این انسان مگر الله نیست یک گوسفند شریر را که همیش اذیت می کند مالک آخر میگه سر ببرید بورید دیاری دست و پایش شبه بندید درسته نیم؟ خیلی شریره